آیا می دونستین که چیزهایی هست که خدا نمی تونه انجام بده؟ عزیزان سلام و به دانشکدی کوچک کتاب مقدس خوش اومدین. ما همه می دونیم که خدا نمی تونه دروغ بگه و گناه کنه و حتی ما رو تحت فشار بذاره که ازو پیروی کنیم. امروز در ادامه مطالعه کتاب مقدس کلام قدوس خدا در درسمون از کتاب اعداد خواهیم فهمید که آزادی و قدرت تصمیمگیری انسان میتونه قدرت خدا رو محدود کنه. کتاب مقدساتون رو بردارین و به معلم ما ملحق بشین تا فرق بین اراده کامل خدا و اراده مجاز خدا رو درک کنین. به دانشکده کوچک کتاب مقدس خوش آمدید. دوره مخصوصی که طراحی شده که به ما کمک کنه کل کتاب مقدس را مطالعه کنیم ما در حال بررسی مهمترین کتاب دنیا هستیم و خوشحالیم که شما هم در این دوره با ما همراه هستید. به بررسی عهد قدیم و مخصوصاً تورات یا پنج کتاب اول عهد قدیم ادامه میدیم. در جلسه گذشته به کتاب اعداد رسیدیم. دیدیم که کتاب اعداد به ما حقایقی را عرضه میکنه که تمثیلی جالب و ترسناک هستند. حقیقی که اگر ما بی تفاوت هستیم به ما هشدار میدن اما حقیقتی که اگر در مرکز اراده خدا هستیم میتونه های ما را آروم کنه یادتونه که تمثیلی از نجات بود که در کتاب پیدایش شروع میشه و در اولین کتاب کتاب مقدس ادامه پیدا میکنه جایی که دیدیم قوم خدا چگونه از بردگی مصر نجات پیدا کردند ما میتونیم تصویر نجات خودمون رو اونجا ببینیم بعد به مردم فرمان داده شده که از طریق بیابان مصر را ترک کنند و به سرزمین وعده برند. سرزمین وعده فراوانی حیات رو به تصویر میکشه. همون چیزی که ما بعد از نجات از گناهانمون سعی میکنیم اون رو تجربه کنیم. کتاب اعداد به ما میگه که قوم یهود مستقیما از بیابان وارد سرزمین وعده نشدن. به مدت چهل سال در بیابان سرگردان بودند. غم انگیزینه که باید بگیم بسیاری از کسانی که ادعا میکنند ایمان دارند. از رفتن به سرزمین وعده خودشون یعنی فراوانی حیات باز موندند با وجودی که از قدرت گناهان و مجازات اون نجات پیدا کردن از اردن روحانیشون عبور نمی‌کنند تا وارد سرزمین وعده بشند. یعنی سرزمین فراوانی حیات جایی که برکات خدا بر اونها میاد و میتونن اراده کامل خدا رو تجربه کنن بلکه در بیابان بی‌ایمانی و سرخوردگی و آشفتگی سرگردان هستند در کتاب اعداد حقایق ترسناکی به ما نشون داده شده ما در جلسه قبلی اونو دیدیم مخصوصا باب چهارده جایی که یک باب تعیین کننده در این کتاب هست پیغام کل کتاب اعداد پیغامیه که در باب چهارده اعداد هست خدا به جایی رسید بعد از اینکه ده بار خودش رو بر قوم خدا ثابت کرد بعد از نشان دادن ده بار معجزات به با اونها که میتونه و قادر اونها رو در زمین کنان به پیروزی برسونه خدا این قوم رو در آنچه که میخواستن به حال خود رها کرد. خدا به اونها گفت شما نمیخواید وارد سرزمین وعده بشید. پس من شما رو با اونچه که میخواید به حال خودتون رها میکنم. شما وارد سرزمین وعده نخواهید شد. همه شما به غیر از کالی و یوشه در بیابان خواهید مرد. کالی و یوشه تنها بازماندگان دوره سرگردانی در بیابان بودند. به علاوه اون حقیقت وحشتناک که در جلسه قبلی از کتاب اعداد مطالعه کردیم حقایق بسیار دیگری هم در این کتاب هست. بعضی از اونها خیلی ترسناک هستند. من دوست دارم که در ضمن مطالعه کتاب اعداد برای دومین بار به با اونها اشاره کنم. قبل از همه در باب نه وقتی خیمه پرستش تمام شد و برافراشته شد، واقعی بزرگی اتفاق افتاد. روح خدا بر اون خیمه کوچک پرستش آمد و تماماً اون خیمه رو پر کرد. روح خدا که اون خیمه رو پر کرد، آشکار کرد که خدا با اونهاست. اگه ما بتونیم اینو یک بار دیگه به تصویر بکشیم یادتون میاد که خیمه کوچک پرستش درست در وسط اردوگاه آنها بود وقتی اونها در بیابان حرکت میکردن اونها به صورت جماعتی انبوه و بینزم حرکت نمیکردن اونها به شکل نظامی حرکت میکردن هر طایفه جایگاه خاص خودش خودشو در اطراف خیمه داشت این یکی از معجزات زیبای عهدعتیقه. وقتی که برای اولین بار خیمه براف شد ابر بر روی خیمه آمد و اون رو پر کرد این سمبلی بود از واقعیتی که روح خدا بر روی خیمه پرستش آمده و اون رو پر کرده. بعدها وقتی معبد سلیمان از روی الگوی خیمه ساخته شد، همون واقعه اتفاق افتاد. جلال خدا به شکل روح خدا آنچنان معبد سلیمان رو پر کرد که کاهنان نتوانستند به کارشون ادامه بدن و مجبور شدند از معبد بگریزند. شما این کلام زیبا رو در کتاب اعداد میبینید و در روزی که مسکن برپا شد، ابر مسکن خیمه شهادت را پوشانید. و از شب تا صبح مثل منظر آتش بر مسکن می بود همیشه چنین بود که ابران را می پوشانید و منظر آتش در شب و هرگاه ابر از خیمه برمیخواست بعد از آن بنی اسرائیل کوچ می کردند و در هر جایی که ابر ساکن می شد آنجا بنی اسرائیل اردو می زدند به فرمان خداوند بنی اسرائیل کوچ می کردند و به فرمان خداوند اردو می زدند همه روزهایی که ابر بر مسکن ساکن می بود در اردو می ماندند و چون عبر روزهای بسیار بر برمزکن توقف می نمود, بنی اسرائیل ودیعت خداوند را نگاه می داشتند و کوچ نمی کردن. و بعضی اوقات عبر ایام قلیلی بر می ماند. آنگاه به فرمان خداوند در اردو می و به فرمان خداوند کوچ می کردن. بعضی اوقات عبر از شام تا صبح می ماند و در وقت صبح عب برمیخواست خواست آنگاه کوچ می کردن. یا اگر روز و شب می ماند چون عبر برمیخواست خواست می کوچیدند. خواه دو روز و خواه یک ماه و خواه یک سال. هر قدر بر مسکن توقف نموده، بر اون ساکن می بود، اسرائیل در اردو می و کوچ نمی و چون بر می خواست، می این داستان زیبایی از موجزه زیباست که نمادی از مسح روح القدس بر ما و پری روح در ما هست. یادتونه که خیمه پرستش در عهد جدید تبدیل شد به تصویری از بدنهای ما. روح القدس ما رو مس کنه، در ما ساکن میشه و همانطور که خیمه پرستش رو پر کرد ما رو هم پر میکنه اما یک حقیقت جالبی هست که ما به عنوان کاربرد این معجزه در کتاب اعداد بینیم. شاید بپرسید اگر این روح اونها رو هدایت میکرد اگر وقتی روح حرکت میکرد اونها هم حرکت میکردند اگه توسط این ابر هدایت می میشدند چرا این ابر اونها رو مستقیما از بیابان به سوی رود اردن هدایت نکرد که وارد سرزمین وعده بشن چطور ممکنه که اونها از هدایت خدا پیروی کنن و دور خودشون بچرخن من فکر میکنم که حقیقت مهمی اینجا هست که لازمه درکش کنیم به این ترتیب که فکر کنیم خدا هم محدودیتی داره خدا به خاطر ضعفهای ما محدودیت داره نه به خاطر خودش خدا ما رو مخلوقاتی با اراده آزاد خلق کرده این چیز بسیار مقدسی برای خداست او آزادی انتخاب ما رو سلب نخواهد کرد وقتی خدا انسان رو خلق کرد، او رو با حق انتخاب خلق کرد. خدا در هیچ کجای دیگر خلقتش این کار رو نکرده. این چیز مختص انسان هست، و خدا مخلوقی بر روی زمین خلق کرده که بتونه انجام اراده او رو آزادانه انتخاب کنه. این طرح مهمیه که بوحدت خداست که او رو در تواناییش برای هدایت ما محدود میکنه. به نظر نظر میرسه که خدا با ما محدود میشه. اگه ما ایمان داشته باشیم و باور کنیم و تمامی برکاتی رو که خدا برای ما داره بطلبیم و اراده نیکو مقبول و کامل او رو برای زندگیمون بطلبیم، اون موقع اون میتونه ما رو به سرزمین وعده روحانیمون هدایت کنه. او میتونه به ما برکت بده و ما رو به مرکز و قلب اراده خودش برای زندگیهامون هدایت کنه. اما اگه ما ایمان نداشته باشیم، خدا با بی ما محدود میشه. خدا به این صورت محدود نیست که فاقد قدرت باشه. او از این نظر محدود هست که ما را مخلوقاتی با حق انتخاب خلق کرده و هرگز ما رو وادار نمی‌کنه که کاری بکنیم خدا میتونه به ما پیشنهادات زیادی بده که ما نتونیم رد کنیم گاهی تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که تسلیم او بشیم و اراده او رو انجام بدیم به هر حال یه چیزی هست که خدا هرگز ما رو وادار نخواهد کرد کاری بکنیم چون او ما رو به صورت مخلوقاتی با حق انتخاب خلق کرده آزادی انتخاب حقیقت جالبیه که ما در کاربرد این معجزه در کتاب اعداد می‌بینیم. میخوام تأکید کنم که کاربرد این جلسه حقیقتیه که حضور خدا به شکل ابر در روز و به شکل ستون و آتش در شب بر روی خیمه پرستش آمد و اون رو پر کرد. ابر تبدیل شد به مرکزی که در اطراف اون قوم خدا هدایت الهیشون رو می‌یافتن. ایمان دارم که کاربرد این معجزه داستان زندگی من و شما در اغلب اوقاته. چیزی به نام اراده‌ی کامل و هدایت کننده خدا هست و اراده مجاز خدا اگر خدا خداست و اگر تمامی قدرت از آن اوست پس هیچ چیزی نمیتونه بدون اجازه او واقع بشه اما همینطور اراده هدایت کننده خدا هم هست به دو هم مرکز فکر کنید دایره درونی میتونه نشانگر اراده هدایت کننده خدا باشه و دایره بیرونی نشانگر اراده مجاز خدا واقع گرایانه است که باور کنیم بسیاری از کسانی که اظهار می کنند دیمان دارند بیشتر زندگی مسیحیشون رو در اراده مجاز خدا میگذرونند و مقدار اندکی از زندگیشون رو در اراده هدایت کننده خدا سپری می کنن. فکر می کنم دلیلش اینه که چرا ستون ابر و آتش قوم خدا را مستقیما از بیابان به سرزمین وعده هدایت نکرد در عهد جدید در با باب سه و چهار گفته شده که آنها به خاطر بی ایمانیشون وارد سرزمین وعده نشدن حقیقت دیگری که فکر میکنم در کتاب اعداد جالبه در باب یازده هست جایی که درباره من آسمانی و بلدرچین صحبت میکنه خدا به طور العاده اونها رو با مننا تغذیه کرد کلمه من در ابری به معنی اونچیه آمده اونها نمیتونستند بفهمند که اون چیه. از این رو به اون اینچیه نام دادن اگه شما به زبان ابری بخواید بگید این چیه باید بگید مننا. خدا به مدت چهل سال اونها رو با این چیه تغذیه کرد. جالبه که وقتی اونها وارد سرزمین وعده شدند، منّا قطع شد. اما تا زمانی که در بیابان بودند، خدا به طور خارق این نیاز اونها رو رفع کرد. گفته شده که این قوم مرتباً به موسی می زدن. اونها با زدن هاشون به او فشار میآوردند بخشی از های اونها در اعداد باب 11 بیان شده که میگه: و قوم را بگو که برای فردا خود را تقدیس نمایید. تا گوشت بخورید چون که در گوش خداوند گریان شده گفتید کیست که ما را گوشت بخوراند زیرا که در مصر ما را خوش میگذشت به یاد داشته باشید که مصر سمبلی از زندگی گذشته گناهالود ما در دنیا بود تمثیلی در این هست که میگه موسی شنید که قوم با اهل خانه خود هر یک به در خانه خویش می‌گریستند و می‌گفتند ما را گوش بده تا بخوریم زیرا که در مصر ماهی و خیار و خربوزه و تره و پیاز میخوردیم. جدیترین چیز در این مورد اینه که مقدار گوشت و منایی که برای اونها فراهم شده بود مسئله نبود. مسئله این بود که توجه کنید در این متن کتاب مقدس کتاب اعداد در باب 11 اونها پنج بار میگن در مصر. چیزی که اونها مشتاقش بودند گوشت زیادتری نبود. اونها در آرزوی مصر بودن به طور تمثیلی این تصویری از کسانی که نجات یافتند خدا اونها را از سبک زندگی گناهالودشون نجات داده، از مصر روحانیشون و بعد از اینکه نجات یافتند و آزاد شدند، اونا دور خودشون میچرخند و میگن، آه در مصر، اونها برای طریقهای گناهالودشون، دوستان گناهکارشون و روابط ناپاکشون دلتنگی میکنن. وقتی کسی که از مصر نجات یافته، از بردگی رها شده، از بردگی گناه نجات یافته برمیگرده و میگه آه در مصر، این سبب اندوه خدا اندوه میشه. حالا خدا در این بخش به موسا میگه و قوم را بگو که برای فردا خود را تقدیس نمایید تا گوشت بخورید چون که در گوش خداوند گریان شده گفتید کیست که ما را گوشت بخوراند زیرا که در مصر ما را خوش میگذشت اینجا مسئله گوش نیست خدا میگه اونقدر به اونها گوشت خواهد داد تا از دماغشون بیرون بیاد خدا گفته شما خداوند را رد کردید و به خاطر مصر گریه کردید مسئله اینه بعد از اینکه برای اونها گوشت فرستاده بود بلا هم فرستاد مزمور 106 آیه 15 اون رو بیان کرده پس آنچه خواستند به ایشان عطا فرمود اما لاغری در جانهای ایشان فرستاد و میگه چون این قوم برای گوشت و مصر وله داشتند او این کار رو کرد اشتیاق برای مصر چیزیه که خدا رو محضون میکنه قومش از بردگی آزاد بودند قوم او دیگر برده نبودند و اینکه دوباره قوم میخواستند به بردگی بازگردند. و دوباره برده باشند او رو بسیار محظوم کرد در این داستان ما حقیقت بزرگ کاربردی می‌بینیم اینجا دوباره مربوط به این واقعیت که خدا ما را مخلوقاتی با حق انتخاب خلق کرده وقتی عیسی با رسولان در انجیل یوحنا ملاقات کرد اولین کاری که کرد این بود که از اونها پرسید چی میخواهید؟ این همون اولین چیزی بود که گفت وقتی آندریاس و دیگران از پی او می‌رفتند پرسید از من چه میخواهید؟ تا حالا توجه کردید که چطور عیسا مرتباً مردم را با پرسیدن این سوال آزمایش می‌کنه که می‌خواهید برای شما چه بکنم او به زن سامری بر سر چاه گفت اگر می‌دونی با کی صحبت می‌کنی از او چه می‌خواستی این می‌تونه آزمایش بزرگ از شخصیت روحانی شما باشه تصور کنید که در دعا دارید با خدا صحبت می‌کنید و خدا به شما میگه چی میخوای. کتاب مقدس میگه که خدا امیال دل ما رو به ما خواهد داد این دلگرمی بزرگیه اما چالش بزرگی هم هست که امیال دل شما چی هستند آیا امیال دل شما برای ثروت حقیقی چیزهای روحانی یا امیال دل شما برای مصره آیا واقعا با تمام دلتون برای مصر آه میکشید اگر زندگی شما کتاب بود و نظر خدا این بود که داستان بنویسه و یک عنوان میگذاشت یک فهرست یک مقدمه و یک دیباچه و اگه در بعضی از قسمتها قلم رو به دست شما میداد و می گفت بیا و داستان را هر طوری که میخوای تموم کن من نقشه‌ای برای داستان زندگی تو دارم من یک فهرست دارم که اگه واقعا بخوای بدونید چیه اونو برات آشکار خواهم کرد تو گیرنده تصمیم هستی داستان رو هر طوری که دلت میخواد بنویس چی مینوشتید شما هر چیزی که دلتون میخواد میتونید داشته باشید اگه دلتون گوشت میخواد خدا اونقدر به شما گوشت خواهد داد تا از دماغتون بیرون بیاد اگه زندگی بی بندوبار میخواید، اگه میخواید در گناه زندگی کنید، میتونید این کارو بکنید. کسان زیادی توی این دنیا هستند که اون چیز رو میخوان. فقط زمان میخواد که شما بتونید اونا رو ملاقات کنید. شما میتونید هر چیزی که میخواید داشته باشید. یا میتونید ثروت حقیقی داشته باشید. ثروتی روحانی که خدا میخواد به شما بده. شما میتونید درآدهای نیکو کامل و مقبول خداوند رو داشته باشید. اراده خدا برای زندگی شما عالیه. اراده خدا برای زندگی شما همیشه نیکو است. اراده خدا برای زندگی شما همیشه نیکویی به بار میاره. اون همیشه کامله و اون تنها چیزی که از نظر خدا قابل قبوله چون که او بهترین ها رو برای شما میخواد. شما میتونید اون رو داشته باشید. میتونید ثروت حقیقی رو داشته باشید و یا میتونید مصر رو داشته باشید. انتخاب با شماست. هر چیزی که میخواهد اون به شما خواهد داد. من فکر می کنم که در کتاب اعداد و درخواست‌های اونها را عطا میکنه، اما لاغری روح به اونها میفرسته. این میتونه نوشته روی سنگ قبر بسیاری از کسانی باشه که ادعا می کنن دیمان دارن. البته چالش کتاب اعداد اینه که بگه اون نباید اینطوری باشه ما میتونیم از داستانهای غم انگیز اسرائیل در کتاب اعداد استفاده کنیم و تلاش کنیم که وارد سرزمین وعده اراده نیکو مقبول و کامل خدا برای زندگیمون بشیم فکر میکنم واقعی جالب دیگه ی کتاب اعداد در باب 13 هست. اونجا که قوم اسرائیل جاسوسانی رو به کنعان میفرستند که زمین رو جاسوسی کنن. اونها دوازده نفر رو برای شناسایی زمین کنعان میفرستند و مطمئنم که شما با داستان آشنایی دارید. به اونها گفته میشه که زمین رو بررسی کنن که ببینن چه جوریه و مردمان اونجا رو بررسی کنن که آیا تعدادشون زیاده یا کم، ضعیف هستن یا قوی. اونها باید شهرها رو بررسی میکردند که ببینند آیا حفاظ دارن یا شهرهای دارای قلعه نظامی هستن که فتحشون سخته وقتی دوازده نفر برگشتند اونها نتونستن خیلی از محسنات زمین وعده بگن اونها خوشه انگور با خودشون آوردن اونقدر بزرگ بود که دو نفر اون رو حمل می‌کردن این به ما نشون میده که اون سرزمین به طرز باور نکردنی پر پرمحصول بود اما اونها همینطور گفتند که مردم اونها مانند غول هستند مردمی جنگاورند مردمانی قوی ونی هستند شهرهاشون شهرهای حسارداره، به طور وحشتناکی حسارداره. و گفتن اون مردم اونقدر بزرگ هستند که ما در مقابل اونها مثل ملخ به نظر می اومدیم حالا با یک امای دیگه در گزارش جاسوسان روبرو میشی گزارش میگه اما کالیب در مقابل موسی استاد دوباره به مردم اطمینان داد بیایید بریم و حمله کنیم چون ما قادریم بر اونها غلبه کنیم خالی با یوشه تنها دو نفری از اون دوازده نفر هستند که گزارش مثبت می‌دن. بقیه جاسوسان گزارش منفی دادن. خدا خیلی تحت تأثیر این قرار گرفت و من فکر میکنم این یک چیز جالب در کتاب اعداد هست که خدا مایل تمامی این قوم رو که چیزی حدود دو سه میلیون نفر بودن با این دو نفر معاوضه کنه. او میگه همه شما در این بیابان خواهید مرد و من اون دو مرد خالی با رو با خودم به سرزمین وعده خواهم برد. چون که اونها تماما از من پیروی کردند و به من ایمان دارند شما پاداشی رو که خدا میده میبینید تاکید و ارزشی رو که برای ایمان قائله وقتی خدا دو نفر رو پیدا میکنه که ایمان دارن او میگه شما بیش از دو میلیون نفر برای من ارزش دارید من فکر میکنم این بسیار جالبه یکی از بزرگترین شخصیت های کتاب مقدس در مورد ایمان این مرد کوچک کالیب هست یک پایان جالب برای این داستان هست در یوشه چهارده و پنج سال بعد وقتی اونها بالاخره از اردن و بور کردند و وارد کنان شدن اونها وارد شهر هبرون شدند. کالیب یکی از اون جاسوسان بود که وارد هبرون شد و فکر کرد که شهر هبرون یکی از بزرگترین شهرهایی که او کنون دیده. کالیب از دیدن هبرون خیلی هیجان زده شده بود او ایمان داشت که خدا به اونها توانایی خواهد داد تا هبرون رو فتح کنن وقتی این رو به موسا گزارش داد موسا گفت: کالیب وقتی که بالاخره به با اونجا برسیم، تو شهر حبرون رو فت خواهی کرد، اون مال تو خواهد شد. بعد از چهل سال سرگردانی در بیابان، کالیب در حضور یوشه رژه میره. یوشه بعد از اینکه موسی میمیره میره رهبر میشه و کالیب میگه یادت میاد که موسا در مورد من و تو چی گفت؟ وقتی ما اون گزارش خوب رو به او میدادیم، من پنج ساله که اینجا توی کنان هستم و چهل سال توی بیابان. من چهل ساله بودم وقتی موسا اون وعده رو داد و, حالی هشتاد و پنج ساله هستم. و حال امروز قوت من باقی است مثل روزی که موسی مرافستاد و چنان که قوت من در آن وقت بود همچنان قوت من الان هست خواه برای جنگ کردن و خواه برای رفتن و آمدن و من میدانم که خداوند با من خواهد بود و من قادر خواهم بود حبرون را فتح کنم حبرون را به من بده پس یوشع او را برکت داد و حبرون را به کالیب به ملکیت بخشید و کالیب هبرون را فتح کرد ببینید کالیب شخصیت زیباییه وقتی بقیه مردم در بیابان غر هم همه میکردند و پافشاری میکردند تا جایی که خدا مجبور شد مارهایی بفرسته که اونها رو نیش بزنند کالیب جز شکایت کنندگان نبود چون که به سرزمین وعده چشم دوخته بود اگر از کالیب در مورد بیابان میپرسیدن، فکر میکنم کالیب میگفت من فقط به اون انگورهای حبرون فکر میکنم. من فقط به خاک حاصلخیز اون شهر زیبای حبرون فکر میکنم کالیب هرگز اون رویا رو از دست نداد وقتی اون جاسوسان برگشتن و گزارش دادن، ده نفر اونها مثل میانگین جماعت کلیساها بودند اونها متخصص چیزی هستند که بهش قول شناسی میگن اونها میتونستن فقط از مشکلات بزرگ و موانع حرف بزنن. در مجموع وقتی شما پروژه چالش برانگیزی رو معرفی میکنید که نیاز به ایمان زیادی داره معمولا شما با این پاسخ مواجه میشید اگه شما دوازده نفر رو مورد سوال قرار بدید ده نفر اونها متخصص قول شناسی خواهند بود یا بر موانع و مشکلات تمرکز خواهند کرد. اونها تمام دلایلی رو که این کار عملی نیست برای شما خواهند گفت. مردانی مثل کاری و یوشه قولها ها رو بزرگتر از آنچه که خدا میبینه بینه مطمئنا غول ها رو میبینند اونها مشکلات رو می اما اونها خدا رو برتر از اونها میبینند مشکلات بزرگ هستند اما خدای اونها بزرگتره. مردانی با چنین دیدی بسیار نادرند اما ما به اونها به شدت نیاز داریم ایمان داریم که این جالبه که در کتاب اعداد از تمامی اون نسل خدا فقط این دو مرد رو وارد سرزمین وعده میکنه که این ایمان شگرف رو داشتند واقعی جالب دیگه در کتاب اعداد در باب 21 است جایی که مردم اونقدر بر خدا و موسی شکایت آوردند که خدا مارهای آتشی در میان آنها فرستاد تا قوم را گزیدند بسیاری از وایزه آرزو دارند که کوزه ای پر از مارهایی داشتن داشتند که میتونستند اون رو در بین جماعت شکایت کننده رها کنند این نشون میده که خدا چقدر از شکایت کردن و هم همه نفرت داره شکایت کردن و قر زدن برخلاف ایمانه خدا مارهایی میفرسته تا این شکایت کنندگان رو بگذزه بعد وقتی بسیاری از اونها از نیش مار میمیرن خدا پیغام رحمتش رو میفرسته خدا به موسی میگه یک مار برنجی بساز و آن را بر نیزه‌ای بردار و هر گزیده شده ای که بر آن نظر کند خواهد زیست. بسیاری از شکایت کنندگانی که مارها اونها را گزیده بودند برای خودشون از علوم پزشکی دلیل آوردند و گفتند نگاه کردن به یک تکیه ربطی به گزیدن مار داره. پس اونها از نیش مارها مانند پشهها می‌میردند. اما بعضی از اونها گفتند خب میدونید این خیلی علمی نیست اما حداقل یه امیده. مطمئن نیم که می‌میریم. من اینجا مثل یک قورباغه باد کردم. و از نیش مار می میرم. این تنها امیدیه که دارم پس اونها از کسی خواستند که اونها را حمل کنه و یا خزیده به مرکز اردوگاه رفتند و وقتی به مار برنجی نگاه کردند از گزیدگی مار شفا یافت. این یکی از بزرگترین معجزات کتاب مقدسه حالا این داستان بسیار زیبایی و اون یکی از معجزات جالب عهد قدیمه و یکی از جالبترین ترین معجزات که تا باب سوم انجیل یوحنا ادامه داره ایسا کاربوردی برای این موجزه نشون میده. ایسا به ما نشون میده که این اونقدر بزرگه که فراتر از یک موجزه یحت قدیمه. ایسا تمام شب رو با یک عالم یهودی به نام نیقودیموس میگذرونه. وقتی او با نیقودیموس صحبت میکنه میگه نیقودیموس گونه که موسی آن مار را در بیابان برفراشت پسر انسان نیز باید برافراشته شود تا هر که به او ایمان آورد حیات جاودان داشته باشد زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاویدان یابد زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند هر که به او ایمان دارد محکوم نمی شود اما هر که به او ایمان ندارد همینک محکوم شده است زیرا به نام پسر یگانه خدا ایمان نیاورده است در باب سوم یوحنا آیه 14 تا 21 به اعتقاد من عیسی مقتدرانه‌ترین جمله اش رو اظهار کرد. عیسی جملات مقتدرانه زیادی اظهار کرده، مثل اینکه من راه هستم و راه دیگری نیست. اما این بسیار قدرتمندتر از بقیه اظهارات او هست. عیسی گفت: من باید برافراشته شوم، همان گونه که موسی مار برنزی رو برافراشت. چون که وقتی موسی مار برنزی رو برافراشت و مردمی که به او نگاه کردند از زخم نیش مار شفای یافتند وقتی من بر صلیب برافراشته شوم و کسانی که به اون صلیب نگاه کنند و به اون ایمان بیارن، مشکل گناه اونها حل خواهد شد صلیب تنها راه حل خدا برای مشکل گناه و من تنها ناجی هستم این یکی از مثال زیبا در عهد جدید هست که مفهوم ایمان به انجیل در این اظهار مقتدرانه عیسی به ما میگه که کی بود چی بود و چرا به این جهان آمد. عیسی تنها پسر خدا بود تنها راه حل خدا بود تنها ناجی خدا عیسی تمامی تعالیمش و اظهاراتش رو به این معجزه در کتاب اعداد ربط میده موجزه مار برنجی در کتاب اعداد به غیر از اینکه یک موجزه بزرگ بود یکی دیگر از تمثیل‌های درباره عیسی مسیح هم بود که مردم اون رو درس علمی کوچکی میدانند اون نشانه کوچکی از چیزی بود که مقرر بود در آینده اتفاق بیفته و بر من و شما تأثیر بذاره به اعتقاد من منظور از معجزه باب 21 کتاب اعداد این بود در کتاب اعداد ما بسیاری از حقایق رو میبینیم که تمثیلی هستند بسیاری از حقایق که جالب هستند جالبه که ببینید وقتی خیمه برافراشته میشه و ابر میاد بر اون قرار میگیره و اون رو پر میکنه و هدایت الهی در اون خیمه کوچک متمرکز میشه ما تمسیل زیبایی و تصویر جالبی میبینیم که خدا چطور ما رو مثل همون قوم هدایت میکنه؟ من فکر میکنم این هم تمثیلی جالب هست وقتی داستان گوشت و مننا رو میبینید که چطور اونها وقتی مشتاق مصر شدن خدا گفت شما میتونید اونو داشته باشید هر چیزی که میخواهید میتونید داشته باشید من فکر میکنم که کاربرد حقیقی اون بسیار قوی هست خدا نیازهای ما رو فراهم خواهد کرد ما اگر بر اون چیزی که اراده پافشاری کنیم او اجازه خواهد داد که اون رو داشته باشیم، اما برای روح ما لاغری خواهد آورد فکر می کنم این هم جالبه که میبینیم اونها جاسوسانی به سرزمین وعده فرستادن که دوازده نفر برگشتند و فقط دو نفر از اونها ایمان داشتند و ده نفر دیگر ایمان نداشتند. همینطور جالبه که بفهمیم که اون ده جاسوسی که ایمان نداشتند محکوم به مرگ شدند چون ایمان نداشتند هرگز وارد سرزمین وعده نشدند. و همین طور این هم تمثیل بسیار جالبیه که می‌بینیم انجیل عیسی مسیح اون رو مقتدرانه و به وضوح اظهار کرده و با این شاکیانه گزیده شده توسط مارها به تصویر کشیده شده گفته شده که با نگاه کردن به مار بلنجی بر روی نیزه نجات پیدا کردن. چون که اگر با ایمان نگاه کردن نجات یافتند حتی اگر هیچ منطقی در درون نبود که با نگاه کردن به نشانه مشکلشون از اون نجات یابند همونطور که مار برنجی به شباهت مارها ساخته شد، عیسی هم به شباهت انسان درآمد. و همونطور که مار بر نیزه برافراشته شد، عیسی هم بر سلیب برافراشته شد. و تمامی کسانی که با چشمان روحانی به او نگاه کنند، از نیش گناه آزاد خواهند شد. نمیدونم آیا اون نگاه رو کرده اید؟ آیا به عیسی مسیح که بر سلیب برافراشته شده نگاه کرده اید؟ آیا ایمان دارید و به کاری که عیسی آنجا برای شما کرده اعتماد دارید؟ او تنها راه حل شماست، چون عیسی مسیح تنها ناجیه و میخواد که ناجیه شما باشه. اگه شما تا حالا به نیازتون برای نجات از نیش سمی گناه اقرار نکردید، امروز روزیه که نگاه کنید، اقرار کنید و زندگی کنید. به ایسا خالق و تکمیل کننده ایمانتان نگاه کنید. او آنقدر شما رو دوست داشت که براتون بمیره تا شما زندگی کنید. اما اول باید تصدیق کنید که گناه کارید. از گناهانتون به سوی ایسا بازگشت کنید و نجات پیدا کنید. دوستان عزیز، مچاکرم که امروز هم با ما همراه بودین و امیدوارم که از دیگرانم دعوت کنیم که به این مطالعه خاص کتاب مقدس ملحق بشن. من همیشه از ایمان کمیابی یوشه و کالیب تشویق میشم و تحت تاثیر قرار میگیرم. وقتی اکثریت اطراف اونها به خدا اعتماد نکردن اونا چطور ایمان داشتن خدا دلیل خوبی داره برای اینکه همیشه موانع رو از زندگی ما برطرف نمیکنه تنها زمانی ما رو از اونها عبور میده یا اونها رو رفع میکنه که ایمان ما رشد کرده باشه و جالب نیست که ببینیم کتاب مقدس در عهد قدیم برای ما این تصویر رو کرده امیدواریم که در جلسه بعد همراه ما باشیم. حالا تا برنامه بعدی، خداوند ما، پدر آسمانی ما که ما رو دوست داره و با فیضش ما رو نجات داده و ما رو از بردگی روحانی نجات داده، ما رو حفظ کنه، تشویق کنه و امید نیکو به ما بده. باشه که شما رو در هر کار و حرف نیکو تقویت کنه.